بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم النبيين و وصحبه اجمعين اما بعد 44 مین درس اس دروس شمائل رسول الله عليه الصلاه والسلام تاليف الامام الترمذي رحمه الله واسكنه فسيح جناته 53 باب 4 باب دیگر رو شنا مونده به پایان این کتاب 53 باب باب ما جاء في السنه رسول الله عمری رسول الله صاحب در این دنیا زنده بودن و زندگی کردند سن و سالشون چند سال زنده بودن اون چیزی که در روایت صحیح اومده شست سال هست البته در بعض از روایت شاز اومده شست سال و خب شاز ضعیف سيسادة أفتادوا هشتمين حديثا موامي تربذي رحمه الله ميجياد حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين خبين حديث وزيرها عبد الله بن عباس صحيح ما زال بخاري مسلم فصل الله صلى الله عليه وسلم 13 سال در مکه بودن بهبرش شد چه ساله بودن که به پیغمبری مبعوث شدند و 13 سالم جوبرش وح شد و 10 سالشم در مدینه چه سالگی پیغمبر مبعوث شدند 13 سالم در مکه بودن 53 سال با 10 سال و تو توفیه و هو ابن 63 در سن 66 سالگی از دنیا رفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا به تفصیل عبدالله بن عباس بیان کرد سيساده هفتوده حديث أمام تلميذي رحمه الله ميقياه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن, عن أبي سهاق عن عامر بن السعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابنه 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابنه 63 حديث درسائي مسلمة حديث معاوية رضي الله عنه خطبهم يخلون دار خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوت 60 سال عمر داشتن ابوبکر همیتور همرم همیتور رضی الله عنهما منم الان 60 سالمه یعنی مرگ منم نزدیکه اونها 60 سالگی مردن منم شاید الان بمیرم یک درس اینجا بهمون میده و اونم آمادگی مرگ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و علیه آماده بوده برای مرگ و همیشه مرگ خودش رو نزدیک می‌دیدن هرچند که 80 سال عمر کرده تقریبا معاویه رضی الله بعد از این خطبهش بیش از 17 سازنده بودن ولی خب همونطور گفتم همیشه برای مرگ آماده بودن و به همدیگر آمادگی میدادن سيساتها اشتادوا مين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقياه حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابنه ثلاث وستين أولي ابن عباس رضي الله عنهم بعد معاوية وانجام من عائشة رضي الله عنهم أجمعين كم يقياه انجام من عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاتح وفتنبه شاسس سال أم داشته أما رواية, رواية بعدية. مسلمه مگه میشه روایتی در صحیح مسلم ضعیف هم باشه بله امام مسلم در مطابعات میاره حدیث ضعیف به خاطر اینکه بیان بکنه این حدیث ضعیف مخالف صحیحه چون حدیث قبلی هم در صحیح مسلمه صحیح رو میاره بعد آخری هم خاتمه با ضعیف اون حدیث ضعیفی رو اشاره بهش میکنه تا اینکه بدونیم که ضعیف شاز. و یک قاعده ای دار داریم در مصطلح حدیث من کسی هم میاره در مختصر علوم حدیث امن سلاح امیر یاد میکنه از اون اتفاق و اجماعی که هست اتفاق در صحت احادیث صحیح نه سنت ما عدا احادیثی که حفاظی هم چون قطنی انتقاد کردن اتفاق در چیه؟ احادیثی که انتقاد نشده اما اگر حفاظی هم چون قطنی انتقاد کرده مثلا البانی گفت این حدیث شازه حالا شما بیاد داد و بیداد کن. ها البانی کیه اومده طعن در صحیح مسلم زده نه در صحیح مسلم نزده امام مسلمم خودش هدف داشته زمانی که این حدیث رو کرده میخواد باید ما بیان بکنه و علماء یک استثنایی در اون قاعده اون اجماع نقد کردن یک استثنایی گفتن اتفاق هست در صحت حدیثین ولی که استثنایی هم داریم پرانتز ما ادا حادیثی که حفاظی هم چون داره قطعی انتقاد کردن به این حدیث هم از جمله همون احادیس البانی هم اولی نبود و آخری هم نیست قبل از البانی حفاظ و محدثین دیگر نقد کردن روی این حدیث و ایراد خود امام مسلم دارس ايووسي مسلمان دلالات بر همین میده که میخواد اشاره به ضعفش بکنه والله اعلم امام ترمذی رحم الله والله حدثنا احمد بن منيع ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن علي عن خالد الحذاب قال ان بن عمار مولا بني هاشم قال سمعته من عباس را يدل عنه ميقول توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو ابن و ستین رسول الله صلی الله عليه وسلم وفات یافتند و 65 سال عمر داشتن حدیث از ابن عباس ابن عباس اونجا صحیح داشتن در بخاری مسلم میگه 60 سال این میگه 65 سال پس این رو باید چیه شازه. زمانه که ثقه با سقه تر از خودش مخالفت بکنه یا با مجموعه ثقات اون روایت میشه چی شاذ این با مجموعه سقات ثقات از روایت تا از روایت معاویه و غیر از ابن عباس داره مخالفت میکنه پس این میشه سيساد أشتده دومين حديث إمامة المدير رحمه الله من ديال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حمضلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن خمس قال أبو عيسى والدغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حديث زيفه مش زيفه تغفل صحبتش براس الله صلى الله عليه وسلم ثابت ني سنينك صحابي هست ما دليل روش نداریم اینکه صحابی باشه دلیل روش نداريم خاطر همین نقدی که روی این حدیث است روی دغفل که خود ترمذی هم اشاره میکنه میگه ما نمیدونیم که حدیثی از رسول الله صلی الله شنیده باشه یک شخصی بوده زمان رسول الله صلی الله شخصی بوده ولی که برای ما شنیدنش از رسول الله علیه و آله ثابت نیست به خاطر همین این روایت ضعیفه 387مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگه حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ربيع ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط بعثه الله تعالى على رأسه أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء قبل <تصفيق> الحديث قبل أن ي الی ما تضییفش نکردیم نگفتیم شازه اینو قبلا یاد کردیم از حدیث الرسول صلی مالک علیه مت خواهم خون فقط سری بعد میام به وجه شاهدش میگه رسول الله صلی الله علیه و قد بلند نبود زیاد و نه کوتاه متوسط بوده نقامتش ولا بالابيض سفید سفیده هم نبود ولا بالادم و سبزه سبز و اون سبزیگی تیره بلکه سفیدیش مائل به قرمزی بود حالا بازم خواهد اومد در انتهای همین کتاب شمائل که خایم خون ولا بالجعد القطط ولا بالصفت مو های رسول الله صلی الله صاف بود و وزویزی و اناتوف زیادی که داشته باشه ان انتافی داشت موهای رسولات سر نه ولی ان انتافه کم بود بعث الله تعالی علی راسه 40 سنه در چه سالگی به پیغمبری مبعوث شد فقام مکه 10 سنی 10 سالی در مکه بود بعد المدینه 10 سنی 10 سالی هم در مدینه نه میگم 10 سالی چرا میگم 10 سالی حدودیه 10 سال کم بیش داره مثلا شما بگی 10 سال در مدینه بود خب چند ماه کم میشه زیاد میشه ممنون در اصطلاح خودمون هم اینطوریه اون کس را جبرانش میکنیم میگیم تقریبا اشتاد هزار یا میگیم حدود اشتاد هزار یا ما این صلاح رو به کار میبریم یا که اون اصلا نمیگیم حدود یا تقریبش میگیم 80000 هزاری اینجا منظور هم ده سالی نه دقیقش حدودن یعنی در مکه بود و ده سالی در مدینه و توفاه الله علی راسه 60 سن 60 سالگی تقریبا یعنی وفاتی یافت انس بن و در سر و ریشش 20 تار مویه. سفیدم تو موهاش نبود یعنی چیزی حدودی حالا ارچند که قبلا عددش رو داشتیم به شما رو که چند تار موی رسول اللہ تعالی سفید شده بود از موهای ریشش و موهای سرش بیشتر چند تاری که بود از اونها توی ریشاش بود بیشتر تا موی سرش پس اون کس را جبرانش میکردن و تقریبه داره میگه از خود انس رضی الله عنه داریم در روایت سهی مسلم که انس میگه قبض رسول الله صلی الله علیه و هو ابن 63 رسول الله صلی اللہ علیه وسلم زمانه که وفاتی آفته 63 سال داشتن و این دقیق داره میگه بغتر همین این روایت تقریبی بود از سن وفات رسول الله علیه الصلاه و السلام. 54مین باب باب ماجعی وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که در مورد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده کی چطور کجا وفات یافت مرق حقه الله هي قيمة كسين بودك دادون بيات بمونه ونميره وطرها من الله جل وعلا دار قرآن يقول ياد برسول الله عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون توم هم ميري همام ميره وهم شرين يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على عقابكم أفإن مات أقر بميرين فيغنبرتون أن شو مهم برميقا دي مرتد مشيت إنها يدوريها هست الله جل وعلا عسرف اینکه بدین بدونیم رسول الله سبحانه قطعا مرده قطعا مرده تماعی نداشته باشیم که او را الان ببینیم مثل بعضی اعتقاد دارن تو جلسات مولودیشون میاد حضور پیدا میکنه بخاطر همه از کلمه حضرت استفادید که حضرت محمد غاتر حضورش در جلسات و در محافل و غیره کلمه بدعتی هست کلمه نامناسبی است حضرت که از حضور میاد رسول الله صلی الله علیه و نداره بیان ما حضور رسول الله صلی الله علیه و زمانی بود که صحابه زنده بودند که مالا الان احادیث وفاتش داریم میخونیم وفات یافتند صحابه هم اومدن تو خونه منزل و عایشه روش نماز خوندن حق غاتر همین ابوبکر زمانی که رسول صلی الله علیه و فوت میشه تو باغش بود وقتی خبر بهش میارن میاد خطبه میخونه میگه فمن کان یعبد الله فان الله حی لا يموت فمن کان یعبد الله کسیک الله رو میپرسید الله حیه نمیره و من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات من کان یعبد محمدا کسیک محمد رو میپرسید علیه الصلاه محمد مورد علیه الصلاه مرگ حق مصیبت برای الله و این اینجا انسان حس میکنه بعد از این که تو این کتاب با احادیث رسول الله صلی میکنه رو به سختی و تلخی هست خسن در اون مرز وفاتشون سختی که داشتن و از دنیا رفت. انگار که وسط ما بودن، انگار که ما هم کنارش بودیم. الله حسنم مرازی و خشنود باشه و ما را با پیغمبرش در فردوس اعلی جنب بکنه. 385 امین حدیث. امام ترمذی رحمه الله میگوید: حدثنا ابو عمار الحسین بن حریف و قتیبه بن سعید و غیر واحد قالوا حدثنا سفیان بن عیینه عن الزهری عن انس ابن مالک رضی الله عن. قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فشار إلى الناس أن اثبتوا وَهُ بَكْرٍ يَأُمُّهُمْ يا وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم <تصفيق> آخر لحظت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزان نقشه أنني أسمى مالك رضي الله عنه يعد بكنا آخر نقوه شش ما كُبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتعده آخر نظره نظرته الهی رسول الله (ص) و آخرین نگاه هم بر رسول الله زمانی بود آخر نگاه هم بر رسول الله زمانی بود که بهش نگاه کردم از گوشه خونش پرده‌ای که جلوی در خونه‌اش بود پرده رو کشید چون منزل رسول عائسته (س) اگر روبروی قبله سمت چپ میشه در حرمش حرم رسول الله (ص) مسجد رسول عائسته (س) مسجد النبی (ع) سمت چپ از اون گوشه صف اول در خونه اون آش باز میشد میومد داخل مسجد پرده هم جلوه درگذاشته بود پرده رو می‌کشه می‌بینه او که صدیق صف اول داره نماز می‌خونه پیش نمازه با صحابه هم پشت سر به توصیه خودش حالا میاد حدیث کشف الستاره یوم الاثنین روز دوشنبه بود رسول الله صلی الله علیه به اتفاق روز دوشنبه وفات یافتن فنظرت الى وجهه کانه ورقه مصحف نگاه چهره‌ی رسول الله صلی الله علیه کردم انگار که ورقه مصحف سفیده. از روشنایش داره میگه انگار یک ورقی که توش قرآن می‌نویسی ورقه پاک صاف و روشن و الناس و خلف اب بکر ماردون پوش سراو بک رضی الله عنه را به شختادا میکنن در نماز نماز میکنه براش اب بکر میخواد پا پاپس بکشه بر وارد صف بشه تا رسول الله صلی و پیش نمازی بکنه دیدن که سر حاله معلومن انسان هایی که از دنیا میخوان برم با مریزی لحظات قبل از مرگشون قبل از اینکه وفات بیادن سر حال میشن خصوصا نسانی که صالح مؤمن ارزشان حسین خاتم نشینه حالا آره یا حرقه پیشانی میمیره یا با عمل صالحی میمیره یا اینکه سر حال میشه قبل از وفاتش این نشانه ها هست بر حسن خاتمه. نشانه هست بر حسن خاتمه. اینجا هم انس رضی الله نقل میکنه. خب قبل از این جمعه انشاءالله خواهد آمد. رسول الله صلی الله علیه و آله دستیره بغلش زدن آوردن به مسجد. ولی اینجا خود رسول الله صلی الله علیه و آله میشه میاد پرده رو میکشه. خوشحال که دیگه الان سالم شده و دیگه خودش میاد پیش نماز میشه و دیگه روی پای خودش ایستاده. محتاجه کسی نیست. خوب شده یعنی. خوشی، همه شاد شده. رسول صلوات الله علیه و سلم اشاره میکنه اثبتو بنبی استید تسرجاتک نکونید و مهم. او که امهم او که اینش نموز و الق سچ رسول صلوات الله علیه پرده رو میندازه اون پرده که کشیده بود اومده بود سرشو گیرن آورده بود اومده بود رو اصحابش اون پرده رو میندازه و توفی رسول الله علیه و سلم من آخر الیوم هم روز آخر هم روز هم صبح اون روز بعد از پرده رو میندازه رسول الله علیه و تسلم وفات مییابد در صحیح مسلم داریم از همین روایت یاد میکنه میگه ثم تبسم رسول الله صلی الله علیه و آله با لبخندی زد. اون لبخندی است تبدیل شده بود و یک خنده‌ای، دندوناش پیدا شده بود. ابتسامه، لبخنده، خنده کم بیشتر از اون ابتسامه هست. قبلا یاد کردیم. دیگه بعد میاد قخه. میگه رسول الله صلی الله علیه و بر صورتش خنده دیدیم، یعنی خوشحال شدیم که رسول در میخنده. الله صلی اللہ وسلم داری میخنده. خوشحالی رسول الله علیه و آله به چی است؟ به امت. اذا الله والد. رايت الناس يدخلون في دين الله يافواج زمانك رس الرسول رسول الله عليه وسلم هجرات كعدن امدتين مسجدي كه الان پرده را کنار کشیدن چند نفری بیش نبودن هجرت کرده بودن منتظر شد تو از حبشه بیان اون 70 نفر و اون چند نفری غیر از اون بار اول هجرت کرده بودن و بار دوم از این ور اون ور یعنی عددشون 300 اندی بیش نبود کل اون اولین لشگری که تشکیل داد در جنگ بعد 300 چند نفری بیشتر نبودن کل اون صحابه مجموعش. الان هجرت زمانی که به مدینه اومدن بحث مکه نیست بحث اون شببی طالب نیست بحث هجرتها نیست به حبشه مجموع مردانی که جمع شدن با رسول الله صلی الله برای مبارزه با مشرکین در اولین معرکه 300 نفر 300 آدمی ولی کن الان بس چطوره در آخرین لشگری که کشیده قبل از وفاتش رسول الله به الله علیه و آله جنگ با رومی‌ها بیش از 10000 نفر بود در حجه الوداع هم همین گفته شده قریب به 100000 نفر جمع شدن اونجا برای ایت الناس یتکونون فی دین الله واجه فوج موج میزنه وارد اسلام میشه همه دیگه ترسی نیستن، کسی تهدیدشون نمیکنه کل تهدیدها از بین رفته خب این سفر چیه 23 سال دعوته زحمت 23 ساله 23 سال. سال تلاش 23 سال جان بکف گذاشتن جان برکت بود برای الله جل وعلا بی آبی بی غذایی میگاشن و خاطر همین امام ترمذی قبل از این باب باب غذای رسول الله صلی الله علیه و را که بدونیم رسول الله صلی الله علیه و این مراحل رو کشیده تا اینجا رسیده این جمع با شکویی که میبینه بعد خنده هم میزنه خوشحاله، خوشحاله با به امت خوشحاله به اون صف خوشحاله به اون دلها که نزدیک شده فبما رحمت من الله اللي ولو كنت فضن غليظ القلب لنفض من حولك یک دست شدن یک دل شدن با هم شدن یک امتی شدن نه کینهی نه کدورتی نه بغضی از بین رفت همه این ناپاکی ها و نخالصی های قلب و کینه و کدورت های ابلیسی و شیطانی از دلشون صاف و پاک شده بود شسته بود الله با اون رحمتش با اون وحیش با اون شست و برخواست رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیتش این تربیت رسول الله علیه, علیه و سلم همه یک امت بودن همه اصاده بودن همه چشم انتظارش خودش. از خوشحالیش میگه زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینه پرده رو میکشه چقدر خوشحاله نسبت به اینکه این, این جنب رو میبینه رو جای انص بذارید حالا خصوصا که رسول الله صلی الله علیه و سلم مننت اسلام رو داره نه مننت پدر مادر قابل قیاس اسلام پدر مادر پدر مادر درسته تو رو به دنیا آوردن حق دارن بعد از الله جل و علا به ولی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حق توحید رو داره بگردن ما حق اینکه که ما از جهنم الله رهایی پیدا بکنیم از خشم الله جلیب علی رهایی پیدا بکنیم و وارد بهشت الله بشیم صفحه غیر صفحه شرک و کفری که سبب میشه که انسان جاودانه در جهنم بمونه پایدار و استوار و رستگان اومد اون در را بر ما بس با اون ارشادی که از توحید به ما داشتن پر سراط رو نشونمون دادن چه راهیه و چطور از اون راه رد بشیم این ان نعمتی هست که الله جل و علا ما اتمام کرد. امروز ما کملت لكم دینا کم و اتمامت عليكم نعمتی. انتمام نعمت. اتمام نعمت. نعمتی دیگر برادران نعمت تو حید نیست. نعمتی برادران نعمت البهی کبر رسول الله صلی الله علیه وسلم شده نیست. نهادش بدر ما اگر تو بشون بدی بکنی بعد از عذاب وارد بهش میشی بلی تو اگر تو نداشته نداشتی باشی هرگز وارد بهش نمیشی. هرگز وارد بهش نمیشی. انتمام نعمت. کمال نعمت. ایش نعمتی برادران این نیست. پیام رسول الله صلی الله علیه و سلام منته فاز داره بر سر همه ما خاطر ایثاری که کردن و خاطر تلاش و زحمتی که داشتن قبال دعوتشون و نشر دین و این صحابه‌ای که اینجنیناها رو تربیت کرده برای ما ساخته این صحابه‌ای که اینجنین تربیت کرده برای ما گذاشته اونها هم مثل خودش صلی الله علیه و سلم و رضوان الله علی اجمعین یاد گرفتن چطور جان بر کف باشن برای الله فی شتربري الله جل وعلا <به> زندجي بكرة. داعر مسداه موه أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذيك وفات في يابان. قبل ذيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة في يابان. أنا سر دري كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت الوفاة وهو يغرغر نفسه. رحالة الروح شديد مش رسل الله سان رحالة غرغر الله زمان آخر اللي هزش؟ سر. خادم رسول الله عيسو ت دیدار خودشان با رسول الله صلی و آخری آخرین کلمات و سخنانی که از رسول الله صلی الله و آله شنیده الصلاه الصلاه ما ملكت ایمانكم الصلاه الصلاه الله میگه رسول الله صلی الله علیه و آله می کرد در روایت دیگر بعد این کلمه رو تکرار می‌کرد الصلا الصلا و ما ایمان ایمانكم ملک یمینت بردهاتون کنیزاتو به خوبی با نها تعامل داشته باشید ولی خب اولیش نماز نماز الصلاة الصلاة هم از روایت مسلمه داریم هم از روایت انس داریم در سنن ابن ماجه داریم در مسنن محمد داریم سبحان الله عظمت نمازه حتی امرو را خطاب زمانی که ابولولای مجسی لعنه الله میاد بش. تعنه میزنه با اون خنجر غشت میکنه بعد که بگهش میاد از نماز میپرسی میگه صلاه نماز سبحان الله عجیب بودن یعنی هم رسول الله صلی الله علیه و هم صحابهش هموغمشون اون بحث نماز و اهمیتش و توصیه هاش زمانی که رسول الله علیه و آله فوت میشه او بکر صدیق که میاد نزد رسول الله علیه سلام بعد از که روح رسول قبض میشه الی خدا باز بازنا حدیث دیگه اب بکر صدیق میاد رو میذاره روی پیشینی رسول الله صلی الله علیه و آله میبوسه بعد میگه طبح حی امامیت فوق خوشبو بودی زمانی که زنده بودی هم که مردی رسول الله صلی الله علیه و آله هم در حدیثی میگه اگر مصیبتی بهتن آمد به یاد مصیبت من باشی مصیبتی بیشتر و بزرگتر از من نخواهید داشت گفتم کسی هست که صفحه‌ی زندگیمون رو به توحید و رغبت با توحید و رغبت برای توحید و رغبت راه بهش رو نشونه مون داد اتمام نعمت بود بر ما اون توحیدی که مات جان خودش را کف دستش گذاشت برای نشرش سيسادو أشتادو الشيشومين حديث نوام الترميذي رحمه الله مجيات حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عونن عن ابن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلي صدري وقالت إلى حجري فدعا بطصة ليبول فيه ثم بالا فمات حديثة البخارية مسلمة يقول رسول الله رسول الله عليه وسلم قلت أشتبه سینم را میاد در روایتی زیر چانم و بالا یکم بالاتر از سینم اینجا میاد میگه که گذاشته بودم رسول الله صلی اللہ روی سینم یعنی یعنی آغوش گرفته بودم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در مناز وفاتش بعد میگه که به من گفتن که ایتشتی بیار چون نمیتونستم بلند بشن بعد از اینکه اومدن پرده رو کشیدن رفتن دراز کشیدن روی پای امونه عایشه اونها عایشه رو در بغل میگیرن بعد میگه که برو برام تشتی بیار برای اینکه اداره رو خودم انجام بدم چون نمیتونسم بلند بشم بعد بهتاسل یبولفیتو اینکه اون اداره رو اونجا تو اون تشتی به خاطر اینکه جای نجس نشه ناپاک نشه ثم بالفه متا بعد از اون ادرار که دیگه بعد از اون فوت میشه رسول الله علیه الصلاه و السلامین لحظات آخر رسول الله صلی الله علیه و السلام در آغوش اونونه عایشه و روی پای اونونه روی سینه‌اش سرش گذاشت چه سختی کشید امون آیشه رضی الله عنها نه رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخر وفاتش مریضی شو میشه بعد از حجات الودا حجات الودا که میان مریض میشن دیگه آخر که خیلی زیاد مریضی شدید میشه که نمیتونه بلند بشه اجازه میگیره از موقعی زناش خمسرانش دوان الله علیه اجمعین که در منزل امون آیشه باشه و با تا جای شدید بود که نمیتونست از جاش بلند بشه دستیره بغلش میزدن چنان چلا خواهد اومد در ها و در اون مرض بود که رسول الله علیه السلام تقاضا کردن از اصحاب یارانش که براش آبهای خونکی بیارن چون تبش بالا بود آب خونکی بیارن از هفت تا چهر مختلف، که آب خنک باشه. خودشو باج بشوره بتونه بلند بشه. وحش شده بود. ظاهرم بر رسول عائزه و سلام به خاطر سحر جادو نبوده یک درمانیه. برای کسی که مریض شدید تب داره و آخر. چون آب خنک بود میگفته بودم در شب بعدن. آب رو میارن رسول و صم با اون آب دوش میگیره، تن رو میشوره و روز جمعه بود که آخر نماز رو برای اصحاب خوند. اومد بیرون، نماز را میخونه. زمانی که عبو بکر دستیر بغلش دستیر به قلش میزنن میاد کنار عبو بکر صدیخ میشینه عبو بکر به امامت راست دا سلام اختدا میکنه و مردم هم به ابو بوده صدیق بوده بود بوده بکر بوده ولی خب بعدی که رسول الله ص ص میاد کنارش میشینه صحابه رضوان الله علیهم اجمعین با ابو بکر صدیق خدمت کردن چون ابو الله به رسول الله ص ص خدمت ده کاتب بود این آخرین نمازی بود که صبح جمعه رسول الله ص ص به اصحابش میکنه ولی خب آخرین باری که میبینه که صحابه نماز میکنن صبح روز دوشنبه بود در صحیح بخاری داریم از ام این عایشه الله عنها میگوید قبضه الله بین سحر و نحری سحر رئاس و نحرم که دیگه همه میدونم جایی که بالای سینه هست روی گردن این رسول الله صدای سلم گرفته بودم روی سینه خودم گذاشته بودم ترشو گذاشته بودم روی سینه ها ولی از محبت از دلتنگی هم هست و تکیه هم داده رسول الله رو, رو روی خودش مواسط امنی نعائشه هست نسبت به رسول الله و سلم سيستة أشتظة هفتمين حديث نوامة المذير رحمه الله ميديات حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت حديث زيفه موسى بن سرجس زيفه. مو سالج ولا ولكن ضعيف. ولكن الحين هذه السعيب خارجي دارين، باو لفزي ديجارلبة. صحيح شو مي؟ خلنا بعد ميرين ب. إن حدش. هملا عشرة لأن هم مقيات. شلون شد السعيب ان إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة او علبة فيها ماء زارف بود زرفة آبي. يا شو فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهي قص ابي بود دارم. آخر لحظات وفات رسول الله صلی الله علیه و غل خودش گذاشته بود از همان ظاهرا همان آب هفت چاهی که دستوردن آب براش بیاره والله علم یشد آب دیگری بوده آب خونک بوده چون تبش بالا بود قش میکرد بعد که بهش میومد می اومد آب بر برمی به صورت خودش میریخ و یقول لا اله الا الله ان للموت سكرات الله صلی الله علیه و یاد میکنه از علامات حسن خاتمه من کان اخر کلام لا إله الله دخل الجنه این توصیه میشه یعنی که این تلقینه نه اون تلقینی که من سر قبره این تلقینه نه اون که میان اون تلقین نیست تلقین لا الله لا اله الا الله سم بیگه کسی که داره میمیره مریض افتاده است بشنوی لا الله که لا اله را تکرار بکنه رسول الله صلی الله علیه و آله خودش این کلمه لا الله را تکرار میکنه لا اله الا الله لا اله الا الله بعد می فرمودن ان للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقد دست بالا آورد دستشو بالا آورد فر رفيق الاعلا بدروات اللهم الرفيق الاعلا حتى قبضوا و مالت سپس دستش که بالا آورده بودن بعد که میگفتن اللهم رفیق العلا دستش افتاد و روحش قبض شد یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلام تمام کردن از دنیا وفاتی آفتن و رفت این لحظات را آخر رسول الله صلی الله علیه و وسلم است البته درس ها و عبرت زیاده توی این یک قسمتش کلا بس اهمیت توحید لا اله الا الله که رسول الله صلی الله علیه و دیگر و دیگه پیغمبران برای این کلمه توحید فرستاده شدن لا اله الله و الله صلی الله علیه و خانواده هم همین قرار دادن یک دو اینکه رسول الله علیه والسلام اینجا فرمودن اینه للموت سکرات مرگ سکرات داره یعنی سختی داره و در اینجا منکرات منکرات اما سختی ها هست شدته شدت امارقه شدت روح کشیدنه یعنی این آیه تعارض داره با اون که یاد شده روح مؤمن زمانی کشیده میشه انگار که آبی از کوزه میچکه نه نه قناقوزی با اون نداره اون خنگام روح کشیدنه این سختی مریضی رسول الله صلی الله و یاد میکنه حتی دردی که داره میکشه میگه لا ازل و به قطع ابهوری. من ذلك السم الذي اكلته بخیبر سمی که خوردم توی خیبر هنوز درد و احساس میکنه بعضی اصول ما گفتن بخاطر که شهید بشه بعضی گفتن نه بخاطر اجر شهید داشته باشه بحث بحث درده و مریضیه شدت مریضیه رسول الله علیه و السلام هست حتی امونی عایشه بیه که ان رسول الله عليه و سلام من احساس میکرد که پام داره میسوزه از بس که تبش بالا بوده یعنی اینقدر سختی میکشه ابن عسيه چنانچه در صحيح بخاري داريم ميگه كه اومدم نظر رسول الله صلي الله عليه وسلم و هو يعك و اكن خیلی درد میکشید خیلی واكن شديدانه خیلی سختی ميگشت با دردش و قلت انك لا توحك واكن درد میکشید. يا رسول قلت ان ذاك لك اجرين درد به داره در مقابل ما ها قال بله اجر من دو شماست درد منم شماست يصيبه أذى إلا حتى الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر ما من مسلم يصيبه أذن إلا حتى الله عنه خطايا كما تحات ورق الشجر هيك مسلمون الناس بمسيبيات دشار بشأن عزياتي مجرد إنك عزيات بشأن مومريزي ومسيبيات مجرد إنك الله جل جلاله كفاره خطاها قرار إشقرار بدكونه هارم معازيش قرار بدك هم وتركه بلکه در اخ مریضی ها هم میریزن با اون مریضی و سختی رسول الله علیه و السلام سخت بود براشون لحظه يه. مرگ اون لحظه که درد میکشید چه از اون سم چه از اون تب چه از اون خستگی که داشتن در ازای اون مریضیشون علیه الصلاه و السلام و این کلمات آخر رو داریم از رسول الله علیه و سلم و اینجا لا اله الله و یک یاداوری هم میکنه مرگ سخته مرگ سخته انسان اون لحظه دیگه حق میبینه با خودش تبدیل میشه به یقین دیگه فرشتگان را رو میبینه زمانی که می روحش رو قبض میکنن ملک الموت با سربازانش انسان اون لحظه میبینه به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند زمانی که روح قبض میشه چشم رو به بالا میره بالا نگاه اون فرشته ای میکنه که داره روحش رو قبض میکنه به همین چشم میره بالا باطره همین میگه رسول الله علیه و سلم میفرمایند اون کسی که فوت میکنه چشاشو ببندید بعد از مرگ چش رفته بالا به خاطر در پی روحه داره نگاش میکنه داره از بدنش کشیده میشه و یک سختی اینی از رسول الله صلی الله علیه و سختی آخر مرگش یک سختی دیگرم سختی فراق اهل اصحاب این هم اصحاب 23 سال دعوت هم ماده زن هم بچه ولی خب دیگه الان لحظه فراقشه این له سکرات سخت این لحظه سختیه انسان بدونه زن و بچهش و همسرش و نوه‌ها و غیرو الله بعد از اینکه بهش عطا کرده دیگه الان با جان بده دیگه ودانام بره دیگه راهی هم برای برگشتن نیست که دوباره برگرده این راز سخته ان للموت سکرات خب یه کلمه دیگر هم میگفته رسول الله صلی الله علیه و آله اینجا چهارمین چیز رفیق ال رفیق ال بعضی بعضی‌ها گفتن رفیق ال منظورش الله, الله جل و علا منظور رسول الله علیه و آله است الله جل علا در قرآن یاد میکنه که اونهایی که اونهایی که شهید میشن در راه الله جل وعلا میمیرن الله اونها رو کنار خودشون ميخاهه الله اونها رو کنار خودش اوثمون هفتو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ولا تحسبن الله درسری بخری که داریم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله لمن يقتل في اموات بل احیا ولكن لا تشعرون زندان. بليخو خب بإنجا. رسول الله عموان يقول لا تحسبنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيون عند ربهم بيشي باردار شدن شو؟ يرزقو. در دربهشته پیش باردار دعارة شو؟ بعضياء قوّت أنك مزور الرسول صلى الله عليه وسلم رفيع خلاله كجاس الله جل وعلا. بعض دجال گفتن أنك نعم. گفتن که رفیق الاعلا منظور مرافقت با انبیا و صدیقین در بهشت الهی چون روح میره به بهشت دیگه چنان چه داریم در سوره نساء من يطع الله والرسول فؤلاک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق وحسن اولئك رفيق رفیق الاعلا منظور نبیون صدیقین و صالحین و شهدا هستند که در بهشت اعلی هستند ارواحشون اونجا از میوه‌های بهشتی میخورن از اونجا میشامند از اون رودهای بهشتی در بهشت برین الله جل وعلا بله. رسول الله صلی الله علیه و این کلمات آخرش بوده از دنیا اللهم رفیق الاعلى اللهم رفاقت انبیا رو میخواد هم به انسان ایک باشه در دنیا اونجا با کی باشی مهمه اونجا کنارت کی باشه مهمه نه تو قرار جهنم با ابو جهل و اون هیچ وقت نیتت هیچ وقت حسد اون پاینتری ها نکن سابقون سابقون باش همیشه پیشتاز باش در امر خیر در نماز چه صف اول بودنه چه تکبیرات الاحرام چه نوازی نافلت تهجد در هر عبادتی در گفتم تهجد غیر تهجد در خوبی بی دیگران همیشه پیشگام باش پیش قدم باش تا با این پیشگامان باشیم تا این لیاقت را الله جل و علا بهمون به بده و این چیزی هم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله میخواد اللهم رفیق الاعلى رفاقت خودت یا هم بگیم رفاقت انبیا که پیش خودشون فرقی هم نمی کنه هر دو تاشون مقصد یکی یک جا هستن کجان بهشت برینن پیش الله جل و سيساده حديث سيساده هشتومين حديث تمامة الميذي رحمه الله ميقيات حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهوني موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عشرة عن هون شنجية الصحابية مزاشناكم يقول عبد الله بن عمر ميقيات كما لغبت النبي خرام اگر کسی ببینه راحتی از دنیا داره میره یعنی بخوام افسوس حالش رو خورم یا غبطه بخورم کلا اون داره راحت میره رسول الله صلی الله علیه و آله دید که با سختی داره جان میده یا با سختی داره از دنیا میره نه اینکه روحش چون روحش که کسی ندیده که چطور که کشیده میشه علیه الصلاه و السلام شک نداره که فرشتگان با استقبال اومدن به قبض روح رسول الله صلی الله علیه و آله ولی که خب لحظه فراق رسول الله علیه و آله زمانی که کاسه آب گذاشته بر تنش میپاشه لحظه سختی بود با اون مریضیش میگه بعد از اینکه شدت مرگ رسول الله صلی دیدم الی شدت موت رسول الله صلی الله علیه و آله و دیدم آخرین لحظات رسول الله صلی الله دیگه غفتی نمیخورم به کسی اگر مرگ راحتی داشته باشه بهترین بشر سختی دیدن و سختی دیدن به هنگام جان دادن از دنیا رفتن نشانه بدی نیست در صحیح بخاری از من عایشه برخوا با لفظ دیگر میگه ما نبی صلی الله و آله و سلم انه لا و ذاقناتی رسول الله الله روی گردنش بود یعنی زیر چونه هاش روی سینش تو آغوش گرفت رسول الله صلی, و سلم فلا شدت أبدا صلی اللہ علیہ وسلم فلا اکره شدت الموت لأحد ابدا بعد نبی صلی اللہ و سلم فلا اکره یعنی کراهاتم نمیشمورم شدت مرگی را برای کسی بعد از اون چیزی که دیدم بر رسول الله صلی الله علیہ وسلم از شدت مرگ یعنی و این شدت مرگ رو نباید بد بشموریم برای کسی و نشانه ی بد رفتن از دنیا نیست اون سختی که انسان میکشه در هنگام وفاتش چانه سوء خاتمه نیست همونطور که با خوشی رفتن یا با خنده زدنم هم نشانه با خوشی رفتر از دنیا نیست با جان دادن خوب نیست یعنی شاید مثلا یک شخص کافری ببینید داره میخنده از دنیا میره یا بوی خوشی ازش میاد. این دلیل برای این نیست که این شخص حسن خاتمه شده بله برای مؤمن این رجا رو داریم امید رو داریم رسول الله صصم خوش خوش بود رسول الله لبخند بچه رش بود با اون شدت مریضی که میکشید میگه چهراشنگ صفحه از قرآن سفیده، روشنه بله برای مؤمن انسان این رجا رو داره این تمع رو داره و خوشبینه به الله جل و علا ولی بله که کافر رو دیدیم دیگه این نشانه خوشبینی توش نیست اهل معصیت و گناهی دیدیم هم همینطور طور امین عاشم اینجا از باب یاداوری به ما میگه اون سختی های مرگ هست برای همه الله جل و نوشته و این سختی ها منقصه‌ای در مرگ طرف یا در زندگی طرف نیست بلکه الله جل و علی اینها را گذاشته برای یا کفار گناه یا کفار گنا یا گناه نداره برای رفعت منزلتش الله نمیخواد بالاتر از پیغمبرش کسی باشه فردا بیاد کسی بگه که من شهید شدم پیغمبرت شهید نشد ادعا بکنه که من بلاترم من مریض شدم او مریض نشده من درد کشیدم نکشیده من جهاد کردم جهاد نکردم هیچ کسی نمیتونه نه در پرهیزگاری و در و عبادات مثل اصلا اصلا باشه کسی نمیتونه باشه و نه هم در سختی و مصیبتی کشیده نه اینکه انسان تمنا داشته باشه سختی که رسول الله صلی کشیدن از اون مریضی که یاد میکنن چه از اون سم که اون زن یهودی گذاشته بود تو غذاش درد میکشید چه از اون تب چه از اون سختی ها و گرسنگی هایی که داشتن همه هم ها ابتلاعاته. و این ابتله ها برای این نبود که گناهانش بخشیده بشه چون گناهانش الله خستاً بخشیده بود با اون فتوحاتی که شده بود اینا همه برای رفعت منزلت برای کسی دیگه جاش بالاتر از رسول الله علیه عمده، عمده، صلی اللہ علیہ نباشه سبحانه کلاللہ و حمدیک سبحانه و حمدی و صلی و محمد و محمد